تا 1110 برادران شاهزاده میگفتند تو ما را از خواب بیدار کردی ما در یک خواب عمیق بودیم شاهزاده خانم پاسخ داد شما آمده بودید که پرنده سخنگو درخت و آن آب را به دست آورید و با خود به قش ییلاقیمان بیاورید اما بر اثر جادو تبدیل به سنگ سیاهی شدید آیا بیاد دارید وقتی اینجا رسیدید های سیاه بسیاری را دیدید بعد از آن دیگر چیزی به یاد نمیآورید. این پرنده سخنگو توانست با راهنمایی‌های های خود مرا بر مشکلات چیره سازد. او به من گفت سبوی آب زرین فام را بردارم و مقداری از آن را رو روی سر هر یک از سنگ سیاه بریزم و به این ترتیب همه شماها را از حالت سنگ بودن خارج کنم. درخت آواز و آب زرین فام را نیز این پرنده در اختیار من قرار داده است. آنچه دارم از این پرنده ای است. که با سخنگویی و راهنمایی خود زندگی دوباره شما برادران عزیز را پدید آورده و مرا در زندگی خوشبخت کرده است شاهزاده بهمن و شاهزاده پرویز و سایر مردان محترمی که جان خود را دوباره به دست آورده بودند از محبت و خدمت بزرگی که شاهزاد خانم به آنها کرده بود سپاسگذاری کردند و گفتند هیچ کس جز شاهزاد خانم نمی توانست بر این سختیها چیره گردد و این افراد سنگ شده را به حالت عادی برگرداند همه ی ما زنده بودن خود را از شما می دانیم و تا پایان عم نسبت به شما مدیون هستیم شاهزاده خانم در پاسخ به قرچناسی های آنان گفت آقایان من هیچ منتی برگردن شماها ندارم زیرا به قصد رهایی برادرانم و در چیزهایی که که زیدوز آرزوهای من بوده از به اونجا آمدم خواست پروردگار و سرنوشت شما مرا بران داشت، که بتوانم برادرانم و شماها را هم از صورت سنگ بودن خارج سازم وقتی با کمک این پرنده سخنگو به اسرار آگاه شدم و کلید حل این معما را به دست آوردم دریغم آمد که برادرانم را نجات دهم و شماها را به حال خود رها کنم به هر حال شما نسبت به من دینی ندارید اینک جای گفتار بیشتر برخی و سوار بر اسب شوید و به سوی های خود بازگردید آنگاه همه سوار بر از خود شدند و شاهصاد خانم که راه بازگشت را میدانست به عنوان راهنما پیشاپیش آنها از میراند. در راه بازگشت به تجیر جیخاییت از همراهان از آنها جدا می و راه خانه و زادگاه خیش را در پیش می‌گرفتند. در طول راه قفص پرنده سخنگو در تمام مدت در دست شاهصاد خانم بود زیرا پرنده خودش را متعلق به او می‌دانست، اما آب زرین فام و درخت آوازخان را دو شاهزاده دیگر هم میکردند. همین که شاهزادگان به قصد خود وارد شدند، نخستین کاری که انجام دادند قفس پرنده را داخل باغ در کنار تالار بزرگ پذیرایی قرار دادند و همین که پرنده خواندن آغاز کرد، تعدادی بیشماری بلبل و پرندگان دیگر آنجا جمع شدند و شور و نوایی راه انداختند. شاخه درخت آوازخان را در گوشه‌ای از آن باغ کاشتند و خیلی زود ریشه کرد و سبز شد. و به زودی درخت تنومنی شد که از هر برگ آن آهنگی متفاوت شنیده می شود. در مورد آب زرین فام نیز آب صبو را در استخر بزرگ و عمیقی که دیواره ها و کف آن را از سنگ مرمر سفید ساخته بودند و عمق آن, آن تا سمیز می رسید خالی کردند و فورا استخر از آب زرین فام پر شد و آب همچنان می و تا لبه ی بالا آمد اما قشه ی نمیگردید. نمی گردید. این آب و جادویی را باطل می ساخت و هر گونه بیماری را درمان می همسایگان و سایر مردم از وجود این های سگانه در باغ ییلاقی شاهزادگان با خبر شدند و شاهزادگان هم در بروی مردم گشودند و اهالی شهر برای دیدن آن آنجای به آن باغ ییلاقی روی می آوردند. تمام شهر تقریبا از آن آگاه شده بودند. شاهزادگان که از خستگی سفر دراز و رنج راه آزرده بودند، بعد از چند روز استراحت به شکار پرداختند و علاوه بر شکار در بیشی زیبای دنبال زمین های قش تا دو سه هم دورتر از می‌تاختند و بارها اتفاق افتاده بود که در هنگام دنبال کردن شکار با شاه که به همان شکارگاه می آمد میشدند اما راه خود را کش می که مقابل او قرار نگیرند تا این روزی در یک از راهای تنگ و پرپیچ و خم نخواسته با شاه روبرو شدند و دیگر نمی توانستند به او پشت کنند و ناتار شدند در مقابل شاه از ععرض پیاده شوند و احترام ویژه بنمماند شاه وقتی حالت آرام و خم و ظاهر و پوشاک و ادب و سخندانی آن دو برادر و اندام و سیمای زیباییشان را دید سخت تحت تاثیر شخصیت آن دو قرار گرفت و گفت از دیدن شماها خوشختم شما ها فرزندان چه کسی هستید و در کجا زندگی می کنید؟ آن دو گفتند شاه به سلامت باشد ما هر دو فرزندان حاکم شهر هستیم که برای ما قصری برای زندگی تابستانی در همین نزدیکی بنا کرد تا در اینجا زندگی کنیم تا بعد از بزرگ شدن برای خدمتگذاری به شاه آماده باشیم. آنگاه شاه گفت به نظر میرسد به شکار خیلی علاقه دارید. آن دو پاسخ دادند تا کار سرگرمی و ورزش عادی ما است. ما غالبا اوقات خود را به سواری و شکار و تیراندازی میگذرانیم و کسانی که قصد خدمت به شاه و سپاهی بودن را دارند باید از هر جهت شایستگی آن را به دست آورند و ما میخواهیم که از افراد شایسته خدمت به شاه باشیم شاه از شنیدن سخنان خردمندانه این دو جوان و خدمتگذاری خدمتگزاری و میهندوستی آنان بسیار شاد شد و گفت: از آشنایی با شما خوشحالم و مایلم به اتفاق به شکار برویم. شاهزادگان و شاه دوباره بر از پای خود سوار شده و به شکار حیوانات درنده رفتند. در این موقع شاهزاده بهمن به دنبال شیر و شاهزاده پرویز به دنبال خرس بزرگی اسب تاختند و هر دو تیرهایی از کمان خود رها ساختند که بر سینه و گردن دو حیوان وحشی نشست و در مدت کوتاهی هر دو را به هلاکت رسانید. سلطان که با چشمان خود مهارت آن دو برادر را در شکار درندگان دید، وقتی به نزدیک آنها رسید فریاد زد، اگر به همین ترتیب شکار خود را ادامه دهید، به تمام درندگان این منطقه را از میان خواهید برد و مرا محروم از شکار آنها خواهید کرد. اما مهم نیست، مهم وجود شما جوانان دلیر و فرزانه است که در آینده می توانید برای این سرزمین سودمند باشید، و وجود افرادی چون شما برای من بسیار عزیز خواهد بود. سلطان خسوشا به قضیه از این دو جوان که نمیدانست فرزندان خود او هستند خسنود شد که از آنها تقاضا کرد هر وقت مایلن برای دیدن او به کاخ سلطنتی بیایند. شاستاد بهمن زمن سپاس از مرحمت شاه به ساند. ما کوچکتر از آنیم که به دیدار شاه بیاییم و به این ترتیب ما را همین دیدار کافی است. سلطان علت خودداری از دیدار شاه را در دربار از آشوازاد بهمن جویا شد او پاسخ داد ما خواهری داریم که هسته با یکی دیگر و داریم که بدون موافقت و اطلاع یکدیگر هیچ قدمی بر نمی باید نظر خواهرمان را در این زمینه قبلا جویا شویم شاه یگانگی آنها را ستود و سپس اظهار داشت بسیار خوب با خواهرتان مشورت کنید و فردا در همین ساعت در همین مکان نظر او را به من بگویید. وقتی شاهزادگان به خانه خود مراجعه کردند، فراموش کردند درباره دیدار با سلطان و دعوت آنها به کاخ سلطنتی با خواهر خود صحبت کنند. ولی فردا صبح که در محل مرده قرار حضور یافتند، شاه از آنها پرسید: پاسخ خواهرتان چه بود؟ دو برادر یکدیگر را نگاه کردند و از خجالت سرخ شدند. سلطان گفت ناراحت نشوید فردا صبح در این محل و در این ساعت پاسخ او را به من دهید فردا صبح که شاهزادگان به محل میادگاه آمدند با هم دچار فراموشی شده و قفلت خدا به عرض سلطان رساندند و پوزش خواستند سلطان ناراحت نشد ولی برای آنکه شاهزاده بهمن بار سوم دچار فراموشی نشود سه سکیه طلا به شاهزاده بهمن داد تا در سینه خود زیر پیراهن بگذارد در هنگام درآوردن لباس بر زمین افتاد و با صدای برخورد سکه با زمینوعدهی خود را به یاد آورد. اتفاقا پیش بینی سلطان درست درآمد و شاهزاد بهمن باز هم فراموش کرده بود درباره سلطان و دعوت او صحبت کند تا آنکه هنگام رفتن به بستر لباس هستند درآورد و سکه ها به زمین افتادند و او را به یاد سلطان و وعده با او انداختند بلافاصله شاهزاد بهمن رویداد ملاقات با سلطان در شکارگاه، و دعوت سلطان از آنها را به کاخ شاه با شاهزاده پریزاد در میان گذاشت. شاهزاده خانم از این رویداد خوشنود شد و به برادرانش توصیه کرد روابط خود را با شاه ادامه دهند. اما تردید دارد که او هم به اتفاق برادران به دیدن شاه برود. علت اصلی این است که ادامه یگانگی و صمیمیت بین آنها در درجه اول اهمیت بود و نمیخواست به هیچ قیمتی خللی به این یگانگی وارد شود. به هر حال راه حل را در این دیدن که از مرغ سخنگو صلاح را بپرسند، شه ساده خانم قفس پرنده سخنگو را به داخل تالار آورد و از او پرسید: آیا رفتن و دیدن سلطان از طرف ما به مسلحت است و در یگانگی ما خلالی وارد نمی‌سازد؟ پرنده سخنگو پاسخ داد: ملاقات سلطان لازم است و برای آینده همگی شماها و حتی خود سلطان هم سودمند خواهد بود. روز بعد دو شاهزاده در میادگاه خود با سلطان ملاقات کردند و به عرض رساندند که خواهر آنها با قبول دعوت سلطان از طرف ما کاملا موافقت دارد. اینک با رضایت خواهر خود به حضورتان تن ایم. سلطان هم خوشنودی متقابل خود را ابراز کرد و گفت: هوشیاری شماها با شجاعت و دلیریتان هماهنگی دارد. محبت سلطان به دو شاهزاده به حدی آشکار بود که نخست وزیر به آن حسادت می‌ورزید. هنگامی که سلطان همراه دو شاهزاده در راه بازگشت به کاخ سلطنتی اسب میراندند احادی شهر در خیابان ایستاده و آنها را تماشا میکردند و از خود میپرسیدند آیا این دو جوان ایرانی هستند یا از میهمانان خارجی شاه هستند با وجود این مردم آرزو میکردند ای کاش این دو جوان شاهزادگان دربار و فرزندان سلطان میبودند و تنانت ملکی فرزندانی میداشت و هنگام فارغ شدن دوشار سه نشده بود اینک باید به همین سن و سال می بودند بعد از ورود به کاخ سلطان تمام تالارها را به شاهزاده ها نشان داد و آنها از زیبایی اساس و لوازم و شکوه معماری بنای کاخ ابراز شگفتی کردند آنگاه سفره گستردند و غذای شاهانه در سفره چیدند و شاه از آنها خواست تا با او هم سفره شوند اول تعارف می کردند ولی با اصرار شاه با شاه هم قضا شدند شاه هنگام غذا خوردن با این دو شاهزاده موضوعی را مطرح کرد تا بداند سطح دانش و آموزش آنها چه میزان است و چون آگاهی شاه در مورد تاریخ ایران و روزگار خیش بسیار بود مطالبی در این زمینه مطرح ساخت و هنگامی که دانش شگفتنگیز آنها و حافظه و آگاهی دو برادر را در زمینه تاریخ و علوم و سایر دریافت با خود گفت اگر این دو جوان فرزند خودم هم می بودند من هرگز نمی توانستم بیش از این به آنها بیاموزم آن وقت آنها را در ذهن خود تحسین کرد و گفت در سراسر کشور کسی را نمی شناسم تا این درجه آگاه و هشیار و ورزشگار و چاب و باشد آرزو می کرد این دو جوان فرزندان او بودند شاه که خود آشنایی کامل با دانش های روز داشت از آگاهی این دو جوان لذت می برد. و میخواست آنها اکثر اوقات خود را با او بگذرانند آنگاه دستور داد نوازندگان به ساز آواز مشغول شوند مجلس پایکوبی و رقص به امر سلطان برپا شد و رقصندگان مشهور درباری به مجلسآرایی هنرنمایی پرداختند و حرکات موزون و هماهنگی با نوای موسیقی ارائه دادند شاه میکوشید به این دو جوان شایسته از هر حیث خوش بگذرد دو شاهزاده از پادشاه اجازه مرخصی خواستند و شاه به آنها اجازه رفتن داد ولی به آن دو گفت من شما را اینجا آوردم تا راه را یاد بگیرید و اینجا را خانه خود بدانید و هرقدر بیشتر نزد من بیایید مرا خشنودتر خواهید کرد پیش از که دو برادر از شاه جدا شوند شاهزاده بهمن گفت ها میبخشید که جسارت می کنم ولی میخواستم از طرف خود و برادر و خواهرم از شما خواهش و دعوت کنم این بار که به شکارگاه تشریف می آورید بعد از شکار برای رفع خستگی و استراحت به خانه ما که نزدیک شکارگاه هست بیایید و همه خانواده را خوش و سربلند سازید پادشاه از دعوت شاهزاده بهمن تشکر کرد و گفت با کمال خوشبختی دعوتتان را می پذیرم. زیرا دلم می خواهد را هم ببینم و میدانم او هم مانند شماها آگاه و هوشیار است خالیه شما را همتان خانی خودم میدانم و فردا صبح برای شکار در همان محله همیشگی یکدیگر را خواهیم دید و از آنجا مرا به خانه خودتان راهنمایی کنید وقتی دو شاهزاده از نسل سلطان به خانه برگشتند به خواهر خود گفتند که فردا سلطان را به خانه دعوت کرده و او هم با خوشحالی تمام دعوتشان را پذیرفته است شاهزاده خانم خوشحال شد و گفت در این صورت بهترین خوراکی‌ها را باید تهیه کنم اما سلیقه شاه را در تهیه غذا نمیدانیم که چه خوراک و گوشتی غذای دلخواه او خواهد بود شاهزاده بهمن گفت بهتر است از پرنده‌ی سخنگو بپرسی و همگی به کنار قفس او رفتند و نظرش را پرسیدند پرنده پاسخ داد شما بهترین ها را در اختیار دارید و او غذای لذیذی برای سلطان تهیه خواهد کرد ولی بهتر از همه آن است که بشخابی انباشته از خیار برای سلطان فراهم کند و این خیارها را قبلا از دانه های مروارید انباشته سازند شاهزاده خانم از پرنده پرسید این همه مروارید نداریم تا آن همه خیار را از آن پر کنید پرنده پاسخ داد فردا صبح زود به باغ بروید و در نخستین باغچه پای نخستین درخت سمت راست را به اندازه یک متر بکنید بعد به جسم سختی برخورد می‌کنید که یک صندوقتی طلایی مملو از مروارید خواهد بود فردا صبح زور شاهزاده خانم باغبان را صدا زد و به او دستور داد که آنجایی را پرنده نشانی داده بود بکنند. بعد از برداشتن خاک به اندازه یک متر صندوقت نمایان شد باغبان آن را بیرون آورد و به دست شاهزاده داد. بعد هم دوباره خاکها را سر جای خود ریخت و شاهزاده خانم صندوقت را گشود و با شکسته دید صندوقت لبریز از برواری در. شاهزاده بهمن و شاهزاده پرویز از دیدن آن همه مروارید مبهود شدند و از خواهرشان پرسیدند چگونه توانستی این همه مروارید که خود گنجی به شمار میآید دست آورید شاهزاده خانم گفت پرنده سخنگو این گنج را به من نشان داد آنگاه شاهزاده خانم سرآشوز را صدا زد و دستورات لازم برای تهیهٔ غذاهای عالی جهت سلطان را به او داد ضمنا دستور داد بشغابی هم انباشته از خیار بر سر سفره برای سلطان ترتیب دهد منتها تمام این دانه‌های مروارید را هم باید در تمام آن خیارها جای دهد شاهزادگان و شاهزاده خانم نفهمیدند که چرا پرنده از آنها است به این ترتیب با خیار امباش از مروارید از سلطان پذیرایی کنند به هر حال سلطان و شاهزادگان در وقت مقرر همدیگر را در شکارگاه ملاقات کردند و بعد از مدتی گردش و سواری به خانه بازگشتند شاهزاده خانم خدا به پای سلطان انداخت و سلطان را از زمین بلند کرد و به چهره زیبای او خیره شد و گفت شما و برادرانتان افراد بسیار ای هستید و برادرانتان هم حق داشتند که در هر مورد با موافقت و نظر شما اقدام کنند از آشنایی با شما خوشفقتم و فکر می کنم بعد از بازدید از خانه و باغ بیشتر با هم آشنا شویم شهزت خانم پاسخ داد سلطان به سلامت باد، اینجا فقط یک خانه ییلاقی است که در کوفایی بناگردیده و هوای آزاد و مطبوعی دارد و برای زندگی آرام و دور از حیاهوی شهر مناسب است. سلطان گفت به عقیده من خانه مدرللی است. بعد از اینکه سلطان اساسیه و لوازم قیمتی و کمیاب موجود در اتاقها و تالارها را دید و فرشها و جواهرات زیبا را تماشا کرد، به شخصاد خانم گفت شما چنین زندگی و بنای مجللی را خانه یلاقی روستایی می دانید. اگر خانه ییلاقی این است که همه آرزوی چنین خانه ای را دارند و حاضرند خانه های شهری را رها کرده به این خانه های روستایی روی آورند بعد سلطان خواهش کرد تماشهایی هم از باغ بنماید شاهزاده خانم در باغ را گشود و به سحن باغ قدم گذاشتند نخستین چیزی که نظر سلطان را به خود جلب کرد کشمه آب زرین فام بود زیرا آب در آن استخ بزرگ مالا مال بود و میجوشید و بالا میآمد ولی لبریز نمیشد و سلطان تعجب کرد چگونه قطره از این آب به خارج از لبه استخ نمی مدتی سرگرم تماشای آب بود و حیرت او موقعی به رسید که فهمید استخ با هیچ منبعی و خود به خود در حال جوشش است بعد از آن شاهزاده خانم سلطان را به تماشای درخت خان برد و برشگفتی وحیرت او افزود سلطان این همه نقمه و نوای گوناگون و گوشنواز آن هم از تمام برک های یک درخت در تمام عمر خود ندیده بود و از کسی هم نشنیده بود و مبود و اطراف نگاه میکرد تا ببیند این آوازها واقعا از درون برک های همان درخت است در یا از محل دیگری است. آنگاه روبه به شاهزاده کرد و پرسید ای بانوی گرامی آیا این آوازهای زیبا از زیر زمین می آید و خانندگان و نوازندگانی در آنجا هستند و یا اینکه به طور نامرئی در فضا مشغول نوازندگی شاهزاده پاسخ داد سلطان به سلامت باد تمام این آوازها از خود درخت است و اگر قجی به درخت نزدیکتر شوید بهتر متوجه موضوع میشوید. سلطان به درخت نزدیکتر شد و به طرز روشن آوازها و آهنگهای متفاوت را شنید و سپس از شاهزاده پرسید آیا به طور طبیعی این درخت در این باقش رویده یا آنگه از جایی برای شما ارمغان آورده اند؟ حتما از کشورهای دوردست چنین ارمغانی را باید آورده باشند چون اگر بومی بود حتما من باید از آن آگاه می شدم نام این درخت چیست؟ شاهزاده خانم پاسخ داد این درخت نام به خصوصی ندارد و آن را آواز خان می نامند و جاز به درختان بومی این مملکت نمی باشد. فراهم آوردن این درخت و آب زرین فام و پرندی سخنگو داستان درازی دارد در فرصت مناسب به عرض سلطان می رستانم. ولی چون فعلا به خاطر شکار و حرارت زیاد آفتاب و سواری در این گرمای طاقت پشتا خسته و احتیاج به استراحت دارید بعد از آن در این بار توضیحاتی به عرضتان می رستانم. سلطان گفت دیدن این شگفتیهای های بیمانن در این باغ زیبا تمام خستگی ها را از تنم زدود و برای شنیدن شرح داستان با بیتابی تمام در انتظارم و مایلم هرچه زودتر پرنده سخنگو را ببینم در این هنگام شاهزاده خانم و سلطان در برابر آب زرین قرار گرفتن و شاستاد توضیحا که منشه اولیه این آب یک کوزه آب زرین بوده که از نقطه بسیار دور دستی از ترچشمی که چهار شیر درنده آن را نگهبانی می اند به دست آمده و همان یک کوزه یا یک سبوی آبی که از صد اصلی به این باغ آورده شده در این استخ که خالی بود ریخته شده و خود به خود به این میزان افزایش یافته و در حال دوران است و یک قطره املب ریز نمیگردد. سپس سلطان با حیرت فراوان به تماشای مرغ سخنگو مشغول شد و شاساده هم برای او تعریف کرد همانگونه که سلطان حد زده اید این مرغ هم از همان محلی که آب زرین به دست آمده به دست از شاهزاده اساسانه تشکر کرد و گفت از این پس سعی می‌کنم که هرچه بیشتر به دیدن شماها به این قصد بیایم شاهزاده و سلطان به سوی تالار بزرگ حرکت کردند سلطان متوجه شد تعداد بیشماری پرنده خوشنوا در روی درختان باغ نغمه دلنواز سر داده و آواز می‌خوانند سلطان سبب وجود این همه پرنده را از شاهزاده پرسید او پاسخ داد وقتی پرنده سخنگو که من قفص آن را در کنار پنجره تالار قرار داده ام نقمه آغاز کند تمام پرندگان خاننده در هر کجا که باشند نزدیک می آیند و روی شاخه های درختان باغ می نشینند و همه به نقمه سرایی می پردازند. وقتی وارد تالار بزرگ شدند سلطان از نزدیک پرنده سخنگو را دید و آوای زیبایی را که از هنجری توانای آن بیرون می آمد، سلطان را به تحسین فراوان واداشت بعد از چند لحظه شاهزاده خانم گفت ای پرنده خوش آواز این سلطان با حضورشان در این خانه ما را مفتخر کرده اند. به سلطان خوش آمد بگو. پرنده فورا دست از خواندن کشید و گفت سلطان خوش آمدید خداوند به شما سلامت و عزت دهد و عمر طولانی عنایت کند. سلطان هم گفت ای پرنده خوش آلحان. از تو ممنونم و خوش نودم که به دیدار سلطان پرندگان در این قصد نائل شدم پس از گفته بود با پرندگی زیبا سلطان بر سر سفره قضا نشست و نخوست یکی از خیارهای تازه و سبز را که همراه خیارهای بسیاری بشخاب را انباشته بود برداشت و آن را نست کرد در این نصد دانه های مروارید قلطان در دامان سلطان فرو سلطان بسیار در شگفت شد و پرسید چنین چیزی در عمر خود ندیده بودم. این چگونه خیاریست خیاری است که مروارید به بار میآورد و مفهوم این گونه پذیرایی چیست و با چهرهی حیرت زده به شاهزادگان می‌نگرید در این لحظه پرنده سخنگو به سخن آمد و گفت ای شهریار بزرگ ملاحظه میفرمایید با وجودی که خودتان با چشمان خود می‌بینید که از داخل های مروارید دا قلطان به دامان شما می‌ریزد باز هم با ناباوری و حیرت به آن نگاه می‌کنید و درباره چگونگی خیار و رابطه آن با مروارید پرسش و تحقیق می کنید. اما وقتی به شما گفته شد همسرتان ملکه مملکت سگ و گربه و موش کور کرزاییده است بدون آنکه آنها را با چشم خود ببینید و یا پیش خود فکر کنید چگونه ممکن است انسانی به جای نوزاد آدمی حیوان به دنیا آورد آن خبرها را باور کردید سلطان پاسخ داد، به دلیل آنکه مامای ملکه چنین خبری به من دادند و خودشان ملک را زایانده بودند پرنده پاسخ داد سلطان می دانستند ماماهای ملک خواهران او بودند که همیشه به خواهر خود که همسر سلطان شده بود و به خوشبختی رسیده و به آنها همسر سر نانوا و سر آشپز دربار سلطنتی شده اند حسودی می کردند و به راحتی توانستند سلطان را نسبت به ملک بدبین سازند و سلطان همفری به آنها را خورده و ملکه بیگناه را به ناحق از زندگی پرسعادت و آرام محروم و آن همه خفت و خاری به او دادید شما می توانید از خواهران ملکه در این باره پرسش کنید و آنها به جنایت خود اعتراف خواهند کرد دو برادر و خواهری را که سلطان در برابر خود می بیند فرزندان شما هستند که ملکه به دنیا آورده و این فرزندان را حاکم شهر که از خدمتگزاران با وفای شما و بدون فرزند بوده به فرزندی پذیرفته و آنها را پرورش داده است سلطان از شادی فریاد براورد و گفت ای پرندی آگاه هرچه گفتی باور کردم زیرا از لحظه نخست که چشمم به این دو برادر و خواهر افتاد علاقه و پیوند محکمی بین خود و آنها حس کردم قلمم تخان کرد و اینک میفهمم سبب این علاقه همخونی و رابطه ی پدر فرزندی بین ما بوده است آنگاه سلطان فرزندان خود را در آغوش گرفت و آنها را غرق در بوسه کرد و آنها هم گرمی نوزش های پدرانی سلطان را لمس کردند و او را در آغوش خود فشردند. عشق شادی از دیدگان همیگی سرازی شد و سلطان زیر لب گفت خدا را شو که فرزندانم را پیدا کردم. اینها جوانان برومن و شایسته از دودمان و خون پادشاهان ایرانیند و شکوه و بزرگ منشی و هوشیاری و درایت آنها بهترین نشانه درستی سخنان پرنده سخنگوست اینها اینها فرزندان عزیز من و ملکه هستند نه فرزندان حاکم با وفایم که زندگی و سعادت این فرزندان را مدیون او میدانم. بعد از این رویداد حیرت انگیز سرور و شادی در دلهای پدر و فرزندان موج می زد. آنگاه پدر فرزندان را به خوردن غذا دعوت کرد و به آنها گفت نور چشمان دل بندم من پدر شما هستم و به وجود شماها افتخار می کنم فردا ملکه مادر بیگناهتان را به می میآورم و آماده باشید تا با مادر وفادار و رنج کشیده خود روبرو شوید میدانم از دیدن شماها و شماها با دیدن مادرتان چه اندازه شاد خواهید شد بعد از آن سلطان با شداب فراوان سوار بر اسب شد و با حالت تاخت به سوی پایتخت روانه گشت و به محض رسیدن فرمانی صادر کرد. و به نخوص وزیر تسلیم نمون تا فورا خواهران ملکه را بازداشت و مورد بازپرسی و پرسش قرار دهند تا مجازات شایسته درباره آن دو تعیین و اجا گردد بعد از انجام بازپرسی و دادرسی هر دو به جرم خود اعتراف کردند و به مرگ محکوم و بلافاصله جنایتکاران به سزای کردار غیر انسانی خود رسیدند در این فاصله سلطان شاه در کنار اعیان و بزرگان دربار سلطنتی، به نزدیک در ورودی مسجد بزرگ پای تخت رفت و ملکه را که به فرمان او در قفص زندانی کرده و خفت داده بودند رها ساخت و در حضور بلند بلندپایگان کشور از ملکه پوزش تلبید و به شتاب زدگی و بی ادالتی خود اعتراف کرد و از ملکه درخواست بخشش نمود از گناه بزرگی که نسنجیده و از روی بیدقتی متکب شده بود معذرت خواست و از ظلمی که به ناحق درباره یه ملکه کرده بود، ابراز شرمندگی نمود و گفت: مسببین واقعی به کیفر بدانگیشی و بدخواهی قجاستیدند و خود را شو که در مقابل این ناملایمات و سختیها، فرزندان ما سالم و برومن هستند و از وجود خود شاهزادگانی ساخته اند که شخصیت و شجاعت و آگاهی و دانش آنها حیرت انگیز و تحسین آفرین است. آنگاه پادشاه ضمن معرفی سه شاهزاده شایسته تمام امتیازات و عناوین مربوط به عنوان ملکه بودن کشور را به ملکه بازپس داد و در حضور مردم و اهالی پایتخت ملکه را مورد احترام و ستایش فراوان قرار داد این رویداد تاریخی و شگفت آور به سرعت در سراسر کشور منتشر گردید فردای آن روز صبح زود سلطان و ملکه به قصر ییلاقی که حاکم در خارج شهر و در پایی بران کرده بود رفتند و فرزندان برومند و زیبای ملکه را به حضورش آوردند مادر رنج دیده فرزندان را در آغوش گرفت و اشک شادی از دیدگان سلطان و ملکه جاری گشت سلطان متأسف بود که چرا این بانوی بیگناه را آنچنان به خاری و پستی کشانده و خود ملکه هم متأسف بود که چرا این ایام دراز را از همنشینی و مصاحبت دیگر هایش محروم بوده است در این تشریف فرمای سلطنتی حفش شاهزاده دستور دادند تا بهترین غذاها توسط آشپزهایشان برای پذیرای سلطان و ملکه و بزرگان دربار تدارک شود. زنن کلیه میهمانان از درخت آوازخان و آب زرین و پرنده سلطان و